بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وآل وصحبه أجمعين أما بعد قال أركان الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله شرط داشتي حنجوميش واليوم الآخر روز آخرات روز آخر آخر ديجريهس آخر آخرين الرسل الله خدم روز آخر نه روزی دیگر آخر روز آخر روز آخره چون آخرین مرحله زندگی ما هست که دیگه بعد از اون شبی نیست دیگه برای ما بعد از اون زندگی نیست که شب بخوابیم روز پا بشیم آخرینه آخرین مرحله چه روزی؟ روزی که ما از قبل مبلوس میشیم روز حشر روز بعث روز معاد معاد از عوده بازگشت روز بازگشت روز رستاخیز دوباره از زمین بیرون میاییم این روز آخره روز آخر امام تبری رحمه الله در تفسیرش در بحث که چرا روز آخر میاد میاد چه توضیح میده که بله آخره به اعتبار اینکه دیگه بعد از اون روز دیگر نیست دیگه تبعی انسان نداشته باشه که دیگه دوباره بمیره دیگه بعد از اون دیگه مرگی نیست در این دنیا در این روز که ما الان درشت هستیم در این دنیا مرگی هست آخری هست ولی اونجا دیگه آخری نیست آخرینه. از این با این اسم خداوند روی اون روز گذاشت روز آخر روز آخر بعد از مرحله قبر برزخ که انسان ها در قبر میخوابونه نشون و ارواح میان در قبور بعد امتحان میشن بعد از اینکه مراحل گذاشت و زمین زمین دیگر شد و مت توبددل و غیر ار زمین زمینی دیگر شد آسمان ها به هم ریشته شد نور پرشید از بین رفت نور ماه از بین رفت آسمان ها و زمین و کهکشان ها به هم دیتن توازنشون از بین رفت تا اینکه دوباره بعد از جرایانی در سور دوه بشه بعد از اون دوباره اول در سور دمیده شد و دنون ف خف سوور و سایق من که سماات و حچه در آسمان و زمین ساعته میشن جز ارواش و که در نزد خدا هستن. اتنازه در حدیث داریم ما مگر شهدا و دیگرانی که خدا استثناشون کرده. همه کس، حتی ارواح هم سعاقه میشن. همه کس سعاقه میشه. بعد از اون که سعاقه شد، باز بار دیگر خداوند به اصرافی لسور میده که برای بار دوم، برای آخرین بار هم باز هم در سور در سور دمیده میشه. و زمین دیگر صاف، همبار، انسان ها مثل یک نهالی از زیر اون خاک بالا میان، بیرون میان حفات، عورات، غرلا. نخه نشودن، نلباسی بر، نجامی بر کنشون هست. لخت اوریان میان بیرون در صحنه محشر این صحنه محره روز آخرت، روز بعث، روز جزاز از اسمهاش القارعتم القارع، الحاقة طامة الكبرى اسمهاش لرزش توش هست، عزمت توش هست. الطم، الصاقة، اینها. از اسمهای که هست خداوند گذاشته روز, روز قیامت روز بعث روز حش روز محشر اونجا انسان باید بیاد تابان اعمالش رو پس بده در اون روز حتی حیوانم خداوند مبروزش میکنه حیوان بیشا از شاقدار تساس میگیرد روز حساب و جداست حتی حیوان از حیوان چه برستد انسان از انسان دیگه صحنه محشر تمامی مخلوقات از قبل بیرون اوم تا زانو تا نافشون تا سینهشون در عرق خودشون غرقن کسانی خدا در اون صحنه نجاتشون میده زیر سایه عرشش سبعتون یو هم الله تحت ظلهی یا ملا ظله دل الا ظله در زیر سایه عرشش خدا من پناهشون میده که از سوزش فرشید نجات میابه از اون عذابی کنجا خدا گذاشته و بعد اونجا حوض را برخواه می کند حوض رسول الله صلی رسول الله علیه سلم مؤمنان میشن. سحنه ایمان ایمانه بروز آخرت ایمان به حوز داشته باشه و رسولان بر سر حوزی استاده و کسانی که از اون حوز رسولان بنوشن اون حوزی که از آب کوسه از اون حوزی که از اون استخری که رودی از رودهای بهش از زیر صدرت منتها که رسولان صلی علیه و وسلم به اونجا رسید که فرمودن که ریل به من گفت دوتا رود ظاهر و باطن از اینجا سرچشم می‌گیرند. اما دو تا رودی که سرچشم می‌گیرم به داخل بهش فلان رود و فلان رود و یک و دو رود دیگر، یا یا یکی رود رودهای دیگر که اونجا ظاهره که خارج میشه، بحث نیل و دجله و فرات رو میکنه رسول الله صلی الله علیه و سلم. در این دنیا چطور؟ الله علیه و یکی از اون رودهایی که در اون درخت سرایت المندها میشه. غیر از اون رودی که سرایت میشه بهشت، یکی از اون رودهای باطنی سرازیر میشه به حوزه رسول الله صلی الله علیه و سلم. کوسر یا حوزه رسول اللہ تعالی سلام از رود کوسر بعدی هاگر میگن حوزه کوسر به نسبت رود کوسری که در اون حوز یا استخر رسول اللہ تعالی سلام سرازید میشه کسی رسول علیه تعالی سلام میفرماید از اون آب بنوشه اون آبی که از آب زلالتر و صافتر و سفیدتر از سفیدی همون نمیدونم اوصافش اومده کسی از اون آب بنوشه هیچ وقتش لب نمیشه پنجاه هزار سال در دنبال این اون اصحاب محمد کسانی که رهرو راه رسول الله صلی اللہ بودن نجات میابند در اون حوض اما صاحبین بدعت اصحاب بدعت چنانچه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم میفرماین به من گفت کسانی از این حوض رانده میشوند و میگویم اصیحابی اصیحابی نه از امت من اصحاب من مزور اصحاب منزور ره روان راه من امت من مسلمانان بر بعضی‌ها فکر میکنن که اینجا در روایتی چون بعضی روایت‌ها گفته اصحاب فکر میکنن منظور صحابه خیر منظور امت اسلامه چون اون حوز حوز فخابه نیست حوز امت اسلامه بعد جوابش رو دلیل یا محمد تدری ما احداثو من بعدک نمیدونی چه احداث در دین کردنین چه بدعت‌هایی بعد از تو در دین آوردن اینها رانده میشن از اون حوزه رسول الله صلی الله علیه دقت بکنه در بدعت‌ها اوشنش دینش رو در تعالات پاک بکنه دینش و از بدعت و خرافات و از معصیت و گناه که شاید اجتمال این می روید که شاید از اون حوض محروم بشه انسان باید خیلی دقت بکنه کل کسانی از این حوض در صحنه محشد در روز آخرت رانده می شوند بعد از اینکه که هزار سال گذشت تمامی بشریت جمع می شن پیش آدم برای اینکه شفاعت برقا بشه ترازی ها و بشن برای حساب و کتاب آدم میگیت اول نیبورانم مونته که بیشتر نور نور میگیت من چیزی خاصم که نبود میخاسم آیه ابراهیم میگه سه دو روبو من موسی و عیسی بعد عیسی میگه بیا بیفیم از رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله دائمی کنه که شفاعته که جایگاهی هست که خداوند فقط رسول الله صلی الله علیه وسلم میگه که دو در همیشه بعد از هر نماز ما همین برد و تکرار میکنیم اللهم رب هذه القائم محمد النبی سیت بالفضله این وصیله و که خداوند بر رسول الله صلی الله هم مقام عظمات خدوان بهش میده عس این یه بعده مقام محموده این مقام محموده مقام عظمات که مقام بزرگی هست که خدوان به رسول الله صلی الله علیه و سلم در روز قیامت میده بعد از اون ترازوها ورده میشه کسانی وایل اغلال و فی عناقیم وسلاسی و بیشحبوه کسانی با زنجیر کشان کشان رسول جهنم کشانده میشن با صورتشون که خدوان چیشو چششون کور کر میکنه بس کشیده میشن روی زمین و تیگران که میارنشون روی ترازوی اعمال هم خودشون اومده که وزن میشن که رسول الله صلی الله علیه سلم میفرمایه یک شخصی عظیم و جسی چاقی میارن در روز قیامت در ترازوی اعمال به اندازه یک بال پشه وز نداره به اندازه یک بال پشه وز نداره و در آخادیت اومده که خود اعمال وز میشوند روز قیامت و خود صحائف هم اینطور مثل حدیث بطاقه داریم که یک عمله که شخص انجام داده شخصی جهنمی شده، سیئاتش و گناهارش تدقیق داده شده. بعد یکی از اعمال صالحش میارن اونم اون کارت بهشتی، اون لا اله الا الله که در کافه ترازوی نیکی‌هاش که گذاشته میشه، کل اون بدی‌هاش پرواز می‌کنه. حالا این شخص عذری داشته، بس اینه که خود شخص عمل وز میشه، اعمالش وز و همچینی صحایف اعمالش نمیخواب که من تک تک اون آیات و اون احادیث در این باب بگم حالا به جا شاید من اشاره ای هم به اون اون چیزها داشته باشم بعد از میزان و ترازی اعمال دیگه پل سرات میاد کسانی مثل نور ازش اوبور میکنن کسانی چش به هم نداده اوبور میکنن کسانی چارده صفا کسانی راه میرن میفتن هر شخصی یک طوری از این پل سراتی که از نو همه عبور ازش بکنیم اون پوری که بر روی جهنمه تا جایی که وقتی از حضرت میشه حتی تو هم ای رسول الله باید از این پر عبور بکنیم گفت بله آریم ولی کسانی از مومنان مثل نور و کسانی چشم زدن از این پر عبور میکنن و تا کسان دیگر به نحوه های دیگر پس ما باید خلاصه این که ما باید به روز اخرت به اینکه دوباره زنده کنیم شد باید ایمان بیاریم کما بدعنا اول خلق نعید وعدا علینا اینکن ان اینکن فائلی با ایمان داشته باشی که خدا تو را بحث آهد دست فراری از معاد نیست اگر فکر بکنید که فراری از این هست و روز آخرتی وجود نداره تو کافره یعنی کسی بگه آخرتی نیست هر چیز در این دنیا این شخص کافره و هم قرآن داردت بر بحث و معاد دارد و هم سنت از ادلهای قرآنی ثم اینکن بعد ذلك لمیتون ثم اینکم یوم القیامت تبعتون ثم اینکم یوم القیامتی تبعثون حالا شما دو برای روز القیامت بحث رایی شد خداوند در برای مجادله با مشتکین انواع مجادله داره از بحث ابراهیم مثالی که میزنه بحث اون شخصی که مشتکی که اومد استفان را له لبرده کرد که خدا چگونه بحث میکنه بعد خداوند مثالها را میزنه در بحث معاد که چگونه معاد رفت میده جای این مثال نهال جای مثال مسائل عبررا میزنه که جایی زمین خشک بعد بارانی میاد میروین راه های اثبات معاد زیاده اینجا جاش نیست که ما مفصل بهش بپردازیم یعنی که من بیام به طور تفصیل به مطالب بپردازم اینها در متونی بزرگان این مثل فحاویه مثل نمیدونم کتابای دیگه در اونجاها باید بحثش بشه نه در این کتاب تراث اصول که ما میخوام خلاصوار از این مسائل رد بشیم رسول الله صلی الله علیه و سلم می یحشر الناس یوم القیامه حفاة عراة حفاة غرلا هم پوشو گرهنا هم پوشو گرهنا هم ختنه‌نا شده یحشر الناس حش میشن بس حش حقه و هم به اتفاق کسی نبوده مخالفت بکنه در این قضیه مسلمانی بیاد دیگه که محشری نیست روز بعثی نیست جز امصاد ابن سینا و فارابی از فلاسفه که گفتن قیامت خواب و خیاله حقیقت نداره واقعیت نیست اون چیزی <متصف> که ما گفتیم از نسوس کندیم از قران و سنت درست بر با این داره که واقعیت نه خواب و خیال برخلاف اون چیزی که باطل ها از فلاسفه میگن افر حسبتم انما خلقناكم عبتا اگر بگید حشر نیست لازمش اینه که کار خدا بیهوده و عباس بوده افر حسبتم انما خلقناكم عبثا وانکم الینا لا ترجعون تکذيب دار بنیادی اونا میگن بله ولی ما میگیم خیر تکن نمیکنه این فروردگارو که دیگه بر نگه داری، بلکه حتماً یقیناً دو بر دوباره مورد انتقاد است. "إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد" روز معاد. از اول ارکان ایمان بر روز آخره، ایمان به حساب و کتاب. "إن إلينا إجابهم ثم إن علينا حسابهم خداوند حساب و کتاب میکند." من جاء بالحسنة فله عشر امثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون حساب كتاب للمقابلة كوبها وبدها ونضع الموازين القسط غزاشتين مشه حقيقية غير حقيقية ترازي أعمال ونضع غزاشتين مشه حقيقية برخلاف المعتذد اكتب بفتن حقيقية نيس دوتا ترازية ترازية هست دوتا كفة داره كفة خبيها وترافق جرب ديها در أموق ونضع الموازين القصة ليوم القيامة عم تكراس الله مجه وله كفتان عندو تكفت رزق قيامات در رصف ميزان مجه ترازومية ونضع الموازين القصة ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا هيش كظلمة ميشة وإن كان مثقال حبة من خردل حبة من خردل يك حبة يك ذري لزم رزق قيامات فهاد مات آتينا بها و کف بنا حاسبین کافیه حسب کتاب دست ماست یعنی دست خالق ایکتاس دست آن آفرینان دهس که زرارت زرارت چیزها و خبره رضی الله صلی الله علیه و سلم فرماند: "إن الله يدنی المؤمن فيضع عليه كنفه ويسره يسره فيقول أتعرف ذنب كذا أتعرف ذنب كذا" فيقول نعم يا حتى إذا قرضه بذنوبه حديث البخاري وقتی که مؤمن میاد خدا باش سواد میکنه میگه میدونی این گناه گناه کیه بله تا اینکه خودش اقرار میکرد جمله ها خودشه بنده و را آنهاو قطعا اگه فکر میکند بنده دیگه حلق شده بعد از اینکه دیگه می بینه اعمال خودش که وقتی که خداوند بهش میگه این چطور شده چطور شده قال قد ستر توها علیک فرد دنیا من در دنیا زد سترت کردم و آن اغفرها لک اليوم امروز برادر می خداوند بهش میگه فی کتاب حسناته و کتاب حسناتش اصحاب یمین اونجا اونجا اصحاب شمال هست اصحاب یمنی اصحاب شمال نه همه در قرآن میده تحت کسانی که پرونده امانشون دست راست میگیرن کسانی هم پروندهشون دست چپ اونم از پشت کتابشون از پشت میگیرن و دست چپ و اما الكفار والمنافقون فیناد بهم علی رؤوس الخلائق هؤلاء الذين كذبوا علی ربهم الا لعنت الله علی الظالمین اما کفار و منافقین جابر خلائق داد داد میزنن میگن اینها دروغ گفتن به پروردگار خائم بودن لعنت خداوند بر ظالمین همچنین در حدیث های بخاری داریم رسول و آله فرمود من هم بحسنت فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات الى 700 ضعف الى اضعاف كثيره وان من هم بسيئاته فعملها كتبها الله سيئه واحدا کسی یک نیکی انجام بده براش چقدر نوشته میشه که روز قیامت حساب بشه از ده تا 700 اما گناه یکی منظور اینه که اعمال انسان نوشته میشه اعمال انسانم روز قیامت ترازو و خداوند قادره که اعمال ما را به شکل یک چیز در بیاره خداوند قادره همونطور که شخص وقتی که در طلب خوابونده نمیشه بعد از اینکه که منکر و سآل حساب ازش میکنن بعد شخص مؤمن یک شخصی را می بینه با چهره نیک می تو کی هستی چهره نیکه با که با بشارت مجلد. میگه من عمل صالحت اما شخص گناهکار چهره زشته بود چهره بحثناک می‌بینیم میگه عمل سیه پس عمل بده پس اعمال شکل اشخاصی در میاره خداوند میدونه قادر چطور اعمال حساب کتاب میشه الله اعلم هم نسبت اعمال اومده شما تو حدیث قبلی داشت هم اعمال اومده هم خود انسانها آمدن و هم سربنده اعمالش باید ایمان داشته باشیم از ایمان به روز آخرت ایمان به بهشت خداوند, خداوند و جهنم خداوند با توجه الان که ایمان تفسیریش که ایمان مجبلش ما مجبلن ایمان داریم به تمامی اون چیزی که در روهش هست چه دیدیم و چه ندیدیم مالا هرچه که اونا در اونجا چیزهایی هست که ما اسمش شنیدیم، آوازش شنیدیم ولی حقیقتش ندیدیم مالا عین و راس و لا و سمع چیزهایی در اونجا هست که نه گوش دیدیم، نه گوش چش دیده. یقین داریم چه خدا در قرآن گفته از انبیوجاد، از اون رودهای از عسل، از اون رودهای از شراب یقین داریم هرچند تصورش اینجا برامون سخته چه رودی هست از عسل چقدر اونجا زمغرو عثری هست که اونجا تبدیل برود رود میشه چقدر شیر از کجاست الله اعلم ما یقین داریم ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولائك هم خير البريه جزاؤهم عند ربهم جنات و عدن تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا رضی الله عنهم و ورضوا عنهم ذلك لمن خشى ربه ما قبول داریم اون چیزی که خداوند درباره بهشت گفته و اون چیزی که درباره جهنم گفته برای گناهکاران از اون عذاب‌هاشون از اون اینکه خداوند اونها را آویز میکنه بر زبانشون بر سینه هاشون یا دل روده‌شون اونجا با دل روده‌شون کشونده میشن کشون کشون در روز ش... در قیامت در صحنه محشر هر چیزی که به تفصیل اومده و هر چیزی که به طور مجمل اومده درباره جهنمیان و درباره جهنم اینکه تطق النار التي يقولها الناس والحجاره اون آتشی که سوختش از چیه سوختش از مردم و سوختش از سنگه سوختش سنگه عظمت اون آتش اون آتشی نیست که ما در این دنیا میبینیم آتشی که هیزومش سوختش انسانه و سنگه و تک نارا التي اعزت للكافرین این اعترن لضالمی نارا احاطبیم سرادقها و یستقیت و یغاتو بما این تلمهل یشف الوجود اون حمیمی که به داده میشه آب آب یقین داریم اون آب چنان که اینجا میگه وقتی که آب میترونه از تشنگی اون آب بخار چهرهشون رو می‌سونه چهرهشون رو آتیش میزنه اون بخار اون آب همین که در نهایت تشنگی جهنمیان میخواهند که چهرهشون مثل کباب کباب میشه مثل اون گوشتی که روی زغال می‌ذارید این اینجنین یاد کلمه یشوی الوجوه شبی اون چیزی که روی زغال پخته میشه اون آب آبی هستی بخوردشون میدن که بلوشن، می آبی که با بخارش شهرش بخار تاز مشهد فختي مشهد بئس الشراب وساءت مرتفقا بئس الشراب إن باتلين نشيدا نحس كبيرا هذا مشهد إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا طعن الله وطعن الرسول ون جهنمك جائدوه كثانك عسيان الله ورسولش كازان یا وقتی میگن در اون روز یا لیتنا یا لیتنا ای کاش اطاعنا الله و اطاعنا الرسول ای کاش از الله و رسولش اطاعت میکردی اینها مباحثی از ایمان به روز اخرته هرچند که گفتم اونم ابتدای امر یعنی ایمان لازمه ایمان به روز اخرت ایمان به قبرم هست از عذابش از نعیمش از اون بحث منکر و نکیرش از اون برزخی که درهای از بهشت و درهای از جهنم باز میشه همونطور که در بحث یعنی جهنم و روز آخرت این نیست که ما اعتقاد داشته باشیم فقط جهنم مسیر آخره قبل از اون جهنمی که پایان راه یعنی آخرین جایی که انسان ها در اون هستن دیگه بعد از اون دیگه فنا میشه نه بهش جهنمش اینجا بحثش هم نیست که ما باز بکنیم که بهش جهنم فنا میشه یا نه فقط کافی هست که ما بدونیم که عذاب فقط مقتصر جهنم نیست بلکه در صحنه برزخ در روز برزخی وقتی ما مردیم عذاب هست همونطور که رسول صل الله صلی الله علیه و آله حضرت خداوند در قرآن میفرماید در بحث فرعون و آل فرعون و النار يعرضون عليها غدوا وعشيا عذاب جهنم میشن صبح شامگاه صبح و شامگاه و مؤمنین هم رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید که ارواح مؤمنین کطیری علقم از شجر الجنه مثل پرندگان میوه های بهشتی میخورن و این ما باید به اشتراک داشته باشیم از این چیزهایی که از این خبرهایی که خداوند بهمون داده و در بحث ایمان به روز آخرت هم یک مسئله یاد میشه بر خلاف اون چیزی که معتدل اعتقاد دارن این که گناهکاران آخرین کسانی هستن که وارد بهشت خدا میشن کسانی پخته شدن مثل زغال سوخته شدن خداوند اونها را بر میداره از جهنم کسانی که یک ذره فقط از ایمان در قلبشونه بعد از اینکه عذاب تابان عذاب خودشون پست دادن خداوند در رودخانه بهشتی اونها را می‌شود و آنها مثل یک درخت و نهالی دوباره میروند. آنها آخرین کسانی هستند که با این شفاعت، شفاعت شفاعت خداوندی آخرین شفاعت، شفاعت خداوندی بعد از اینکه خلایق، ملائکه شفاعت می‌کنن، پیامبران شفاعت می‌کنن، چون شفاعت پیامبر (ص) دو جا رخ می‌ده. یک جا برای گذاشتن حساب و کتاب، برای حساب و کتاب کردن، میزان و جای دیگر برای امت خودش کسانی که اهل گناه یا اهل معافیت بودن رسول خدا شفاعتشو میکنه تا که بد شفاعتی هم بران شفاعت, شفاعت میکنن تا میرسه به شفاعت خداوندی که قبضه میکنه از جهنمو مؤمنین را که یک ذره ایمان در قلبشونه از اون جهنم بیرون میاره و میشیر اونها رو با با آب بهشتی و اونها دوباره میرویند و اونها رو خداوند وارد بهشت میکنه خب سمرات ایمان به روز آخرت اولیش مراحرت میکنه با طاعت عبادت شوق بهمون میده به پرستش خدا فرق میشه که خدا را از جهتی با محبت بفرستیم از جهتی ازش هم بترسیم. صاحب میشه که انسان مراقبت خدا را داشته باشه. صاحب میشه که انسان بترسه. ذره ذره عملش داره نوشته میشه. هر لحظه هم در مقابل بدی احتمال داره خدا من قبض روحش بکنه. هیچ وقت دل به دنیا نبنده. مؤمن میترسه. ثمرات ایمانه. حتی در کنارش یک دلداری هم هست. مؤمنی که مصیبت میبینه، مؤمنی که در این دنیا عذاب می‌میره شکنجه می‌بینه چنان که رسول خدا صلی الله علیه و شکنجه بدون اگر در این دنیا به خوشینرتی بدون اینکه عاقبتی هست و لل للمتقین مهم عاقبه هست مهم بهشت خداوند هست که اونجا مهم و فی ذلکا سلیتنافس المتنافس مهم اونجاست که خوشنودی خداوند رضایت خداوند شامل ما بشه نه این دنیا دل مؤمن دل مؤمن شاد میشه دل مؤمن آرام میگیره چون خداوند براش پاداشی اونجا گذاشته عزتی اونجا گذاشته همه مؤمن عزت دنیا نیست پاداش دنیا نیست بلکه مهم برایش آخرت خدابنده کسانی که بحث خدا را انکار کردن زیادن الان وقت نمیشه که ما بهش بفردادم شیخ ابن عطمیق رحیم الله عدله های در بر بحث اثبات روز قیامت عدله های و در مقابل هم پاسخ معترضین رو داده که الان وقتش نی است که دوباره شروع کردیم ان شاء الله خواهیم کرد الله علی محمد و علی محمد